عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین یه صلاوت با هم بفرستیم و شروع کنیم بحث رو اللهم صل اللهم محمد و آل محمد خب ابتدای ترم هست و بحث ما از الفصل و رابع فی باقی مستحد ها شروع میشه صفحه دویست و پنج با این چاپ استانداردی که داریم اما قبل از اینکه اون رو بخونیم اجازه بدید من سوالات امتحانی که در انتهای ترم داشتید اینو بررسی بکنیم و بعد وارد بحث بشیم از این پنج تا سوال تستی من نگاه کردم دو تاش مشکل داره حالا ببینید سوال اول یتر الماء المضافو حالا خود بر یار اگه میورد من میگفتم بعضی از تستی ها رو مثلا خیلی یعنی بیشتر افراد اشتباه زده بودن فکر کنم این بود یا کدوم بود یت هرل ماول مضاف آب مضاف چه پاچ میشه آب مضاف وقتی دو تا نوع مختلف میشن اتصال آ اون دو تا قید رو میخواست گزینه به میشه ب اذا صار ما ان مطلق هم. ما اتصال اینو بعضی‌ها انتظار نداشتم اشتباه زده بودن دو کدام گزینه از محرمات بر جنب میباشد اینو فکر کنم همه درست نوشته بودن چه فکر کنم دال باشه قراعت ازائه حرامه دیگه توقفت در مساجد درسته گذاشتن اشیا در مساجد اینا حرامه درسته پس این گزینه دال میشه سه و وطعها قبولن آمدن آلمن فتجبال کفاره اگر وقتی اینجوری بشه زن هایست کفاره بر مرد واجب میشه چقدر؟ سوال در مورد اون چقدرشه به دینار نصف دینار سلس دینار روح دینار کدوم؟ رو چرا؟ شاید نشت... این وقتیش تو <تصفح> سلس اخیر باشه نظر حالی باید باید روح میشه نه باید میگفت وقتی رخ میده یعنی جواب این سوال <تصفيق> وقتی تست شما جوابهای بعدیش نصف دینار، سلسه دینار، روپ دیناره یعنی پای اون مقدار هم وسط اومده اگر میگو به دیناره درهمه، نمیدونم به چی چیه اون، اونان رو میگفت آره میگفتیم همین دینار درسته اما وقتی گفت دینار، نصف دینار، روپ دینار، سلسه دینار یعنی مقدار باید مشخص شد. من هم مشخص نمیشه مگه که بگی چی وقتی رو افتاده. پس این سوال غلط بوده. تو من خبر نداشتم. یعنی سوال اصلا با من که استاد شما بودم و یه کلاس هم بیشتر نداشتیم. اقلا با من مشورت هم نشد. حتی به من نشونم هم نزده سوالات رو که من ببینم. من من بعد از شما دیدم چیزی من بعد از امکان دیدم. خب این سوال رو من به خاطر همین هر چیز هرچی نوشته بود جوابش رو درست گرفتم دیگه. چهارمیش ولی این علتش اینه اون تو عبارات اون عبارات شهید اول هم به دینارن داره آره او اون هم همون رو دیدن دیدانو از همون سال رو ترک کرد شهید <تصار> و دیناره <تصار> <سول سن> <تصار> و خب میگن دیگه یعنی اون عبارت اونیه آره تجب و کفاره تو دیناره اون ادامه عبارت شهید اول فاصله افتاده فصول اولو نمیدونم نمی اینا اون باعث شده که اینجوری شده حالا به نظر من اشتباه بود یالا باز ببینید چهارمین سوال ولو وجد ماعفی اثناء الصلاه ولو بعد از تکبیره دیگه تو اثناء الصلاه دیگه اون موقع چیکار کنه اتمام اتمام هموطلان دیگه آره اینم جوابش الف بود بعد پنجام این سوال هم که مربوط به بخشی بود که مرکز اونجا رو حذف کرده اصلا این همون یه دونه سوال بود که گفته بودن از محدودهی که نخوندیم اومده اونم اینجوری چی من نمره دادم رفتیم یوچه ها بود يوچراحو بود آره به نظرم کراه ها داره. سرفش رو یاد کنه هست بسرفش سد و فکر کنم شما خودت اشتباه زده بودی اینا یه رومو زده بودی <تصفيق> یه رومو زده بودی یه رومو زده یه چه اصلا تعبیرونه ولی جالبه تا سر یوراها هست بود حالا اینجا از اون سوال دادن نمیدن چرا افاظشون نبوده حالا این سوال رو نباید مرکز بفرستن دیگه چون سوالات رو مرکز میگیره اگه این سوالات بره به چه سوالات پ یان جس ما او مطلقان به تغییر به نجاسه و معتبر او منا تغییر الحسی و لتقدیری. اینو قبلا خیلی روش منور دادیم الان آره. سوال اب الفش تغییر به نجاسه و تغییر به متناجز چه فرقی در هوشمون دارن تغییر به نجاسه تغییر به متناجز هوشمون فرق میکنه دیگه متناجز تحسی ندارد شیر انگور نجاسه ریخ تو آب آب برنج شیره انگور در اومد مهم نیست اما اگر خون بریزه و برنج خون در بیاد اون نجس میشه پس فرقشون در حج اینه تفاوت تغییر حسی و تقدیری هم چون این هم معلومه هم میشه باید این سوال رو بدن که ببینن طلب دقت داشته یا نه تغییر حسی و تقدیری فرقشون چیه؟ حالا تو تغییر دوشته تغییره حسی هم ولی. حالا حسی که اون نجس رو یک کاریش کردن که تو آبیخته میشه و نشون نمیده اون تقدیر رو این. البته جور دیگه هم میشه توضیح داد باز این تقدیر رو. و یخسل و سابو مررتین بینه همه اصرون و تصنیت و منصوصتون فی البال و همال المسندف و غیرهو علیه من باب محفوم الموافقه لانه غیرهو اشد و نجاسته اینو بعض اشتباه نمشته بودم من ترجم کردم مشخص. لانه غیره او اشد نجاستا و هو ممنوع میگه استدلال شهید اول چیه همون مفهوم موافقت میگه اگر در بول دوبار شستن لازم است غیر بول چون اشد تر نجاستا هست پس اون به طریق اول دو رو میخواد دیگه لانه غیره او اشد تر نجاستا یک شما شما مثلا یه چیزی یه تحویلی توش داشتید که دیگه ازش گذشتن بکنم شما بودی این این شدیدتر بودن رو اشتباه برعکس نوشته بودید حالا من گفتم صحب قلم و رحوان ممنوع اون اینم نظر شهید ثانیه چه ما این اولویت رو قبول نداریم چی گفته بول نسبت به اونا زعیفتره اونا از بول قویتره چون خون اف شده ولی بول اف نداریم مثلا این یه نمونه چ وشکوف الطهاره مع تيقن الحدث محتسون اینو فرض پیچیده نیست اون فرض آسونه است شاکوف الطهاره مع تيقن الحدث یعنی طرف یقیم داره حدس داشته حالا نمیدونه وضو گرفتی انا خودت ببین محتسن دیگه استصحاب ما عدم الطهاره حالا اینجا تعبیر شهید ثانی اصالت عدم طهارته‌ این دیگه استصحاب نیست من چون اینو چند بار تذکر داده بودم دیگه این استصحاب است. حالت عدم با استصحاب و استصحاب عدم فرق می‌کنه. و شک فی الحدث ما تيقن الطهاره اینا برعکسش متطهرون احسن بالمتيقن. این دیگه استصحاب است. این استصحاب احسن بالمتيقن. و اینا رو باید دقت می‌کردید توضیح می‌دادید. یو ادو غسل الجنابه بالحدث الاصغر فی اثنائه. این هم اون بحث مشهور چه بهقرصل حددس اخر سر بزنه داده میخواد علل اقوا پس ی قول اقوا انل مصنف و جماعت. غیل لااصل له و مطم هیچ هیچی نشده غصل تو تمام کن بعدش نماز هم بخون و فی یجه بل ضوع خاصن این هم قول س. حالا این گفته بود. اقوال مسئول در این وارد فوق رو تمین کنید چه باید جو تازه میداد. ولا او تجااب د حال عشرته فضا ت عادت حاصلت دم مدترین افسن وند به تان سووا و نکان فی وقت معهدم فی وقت این تخه ها ای عادتها و هیزن، صاحب عادت وقتیه و عددیه و صاحب عادت عددیه را تعریف کنید این بود روشن روشنت عادت وقتی و عددی مشخصه حالا اینجا تو عبارت هم آمده بود که دو ماه پر سر هم، یا هم تعداد و هم شروع تمامش و یا فقط تعدادش یکسان باشه دو ماه پشتر هم حکم مذکور در مسئله را توضیح دهید که طرف عادت خودش رو با اون تعدادی که به دست دو حالا تو اون زمانی که از ده گذشت همون عادت خودش رو عکس میکنه هر تعداد بود همون مدار رو میگیره این ها خیلی آسونی بود ما تو دماغ سلاصه انصافم همه سجردم خیلی وقت گذاشتم براتون اگر ضعف داشتی یا خودتون تو کلاس نبودید یا حواستون نبودید یا کار نچه دید من بیشتر از اون دیگه نمیتونستم وقت بزنم آره ششمین سوال این تهدالغاسلو تولا و نیتا ولا تجزی من غیرهی و این تعدده و اشترکو نوا و جمیهن ولا کانالبعضای اصاب بو ولا آخری یقلبو نوستا بو چیلیده حل این؟ مسئله اینه که اون که آب میریزه رو قاسل حساب کنیم پس نیت اون اونه دیگه حالا یه نفر دو نفر هر چقدر شد همونه با تجربه به فوق حالات متعدد نیت رو توضیح دارد تو یه نفر باشه یه شخص نیت میکنه اگر چند نفر دارن آب میریزن همه شون نیت می‌کنن. این دو اگر یکی آب میریزه اون یکی جا به جا میکنه همون کسی که آب می این میریز وفه سفره والخوف تنتصف و ربایه اینا هم باز خیلی اشتراه نمیشته بودن نماز چار رکتی واجب نصف میشه و تسقط و راتبت و مخصوره. نماز نافله این نماز که شکست است دیگه نداریم نافله نداریم و لکر لرکعتین من نافلته تشهدون و تسلیمون این هم یه مسئله دیگه هر دو رکت نافله یه تشهد تسلیم داره. نافله دو رکت بیشتری نداریم. مگر للوتر بنفرادهی ولی سلات الارابی ترتیب و زهرینه بعد از سناییه. بشخص وقتی یه رکت تشهد سلام داره. اعرابی هم دو تا چهار یه دونه ص. اول دو رکت بعد دو تا چهار رکت. استثناء این دو تا شده. آخرین سؤال وللعصر الفراغ منها ولا تقدیرن و تظهر الفائدتو لوسالله ناسین این چی بود؟ خوش به چی بود؟ لعصر الفراغ منها آغاز وقت نماز هست بود دیگه؟ خود نماز خود وقت واجب که به اندازه که به خاندن ظهر نیاز هست اون وقت اون مقدار چه گذشت وقت نماز عصر میسته پس این وقت نماز واجبه چیزی نداره. ولو تقدیرنش هم چی؟ این چی نخونده, ای نخونده؟ ای نخوندم چه. ولی اگه میخوندم اینقدر طور میکشی اون میشه تقدیرن فایده مذبور در عبارت هم اینه که تظهر و فایدت و لوسالله ها ناسیان قبل از ظهر اگر فراموش کنه عصر رو قبل از ظهر بخونه در دو صورت نمازش درسته اگر حواسش نباشه ناسیان قبل از این چه ظهر رو بخونه اصر رو بخونه در دو صورت ترسه یک اینکه کلا تو وقت مشترک باشه دومی که وقتی داره له رو میخونه وقت مشترک داخل بشه یه بخشی از عصر تو وقت مشترک اما کلا تو وقت ظهر خوند عصر رو اون دیگه چاره ای نداره تقریبا فتاوی اینجاست تمام شد کلمه همین موقع که جواب دادم 20 باشتنی توضیحات بیشتر ننویسیم. ب... مورد داشتیم. من جواب دیدم دادم، نمرتو دادم، ادامه‌ی توضیحاتو خوندم، متوجه شدم بلدی نیست. آره. حالا نمرش شد دیگه یادم نمیاد اونو چم کردم یا نه. ولی به هر حال زیاد بعضی وقتا نشون میده که این بلد نیست. مثلا متوجه نشد. حالا به هر حال باشه. اگه دو خود هم داشتیم. چه جوی خدا دلت هم چرا آقا اینه؟ چه دیگه هم ما خوشحال میشه هم اون خوشحال میشه هر حل میشه اگر این نیست اینجوری نه. این حادی جوان خیلی مرتب جواب داده بود. هم خوشخط هم با خلاصه‌ترین تعابیر. بعد بر مواظب باشید اون رو از دست ندید. چیزی که باید بنویسیدو بنویسید بیشتر نه. خیلی خوب. آقا این از برگه ها یه سلوات دیگه بفرستیم و باره این بحث بشیم اللهم صلوه علیه و محمد و آل محمد حالا امروز اول ترم اینجوری بی حال دیگه تا ترم خدا خودش یه رحم بکنه ما بخواد یه سلوات بهتر بفرستیم اللهم صلوه علیه و محمد و آل محمد و الفصل الرابع فی باقی مستحباتها حالا من جلسه بعد میگم من یه سری پیشنهاداتی دارم برای شما شما انشالله یه کاری باید بکنید که کلاس کیفیتش بده بالا دارم بعضی روزها نه اون چای چای خودش من مخالف نیستم خواستید وسط کلاس یه چای پخش کنید ببینم ولی احتمال داره بعضی روزها درس جدید رو تقسیم کنیم مثلا سه چهار خطش شما بیاد بگید سه چهار خط بعدش رو شما بعدش شما بعدش, شما. بعدش شما در طول یک جلسه پنج نفر بیان و دو ساعته بخونیم هرکس در 10 دقیقه 5 یک پیشنهادی هم خواهم گفت ان که یک مباحثه ای اینجا نیم ساعت مباحثه کنم بحث دیروز رو و ما همه همون نگاه کنیم این باعث میشه که یه دیگه حواسا جمع تر میشه یه مقدار حالا اینشالله با فکر بزنتون بزنید ولی خیلی چهفیت میره بالا شاید همین دوبار این کار رو بکنیم شما اصلا رو اون نحوه درست خوندن تاثیر بذاره خیلی اما وارد بشیم صفحه دویست و دویست و پنج الفصل و فی باقی مستحباتها. ها آه ما در کتاب و به فصل چهارم میرسیم در به منو میدونید دیگه, من می دیگه. اینجور چه ها میرسیم باید هم قبلش رو ببینیم چی بوده هم بعدش رو الان فصل چه فصل یکش چی بوده بخده. سریع نگاه حب ببینیم دیگه ببینیم حالا یا تو ذهنتون مونده یا یا نمنده میبینیم مشکل نداره فصل اول تو نماز صرفش هم بلا رحیمی میگه به من صد و شتاب و سلات بله فسول و هو حدر شرف پس یازده تا الان به چهار رو رسیدیم. اولیش اعداد نماز بود یاد تونه میشموردیم نماز رو واجبات چند تا بود؟ واجبا چند تا؟ هفتا نماز واجب. ها خیلی خوب مستحباتش شمار نداشتی که خیلی بود آره این از اعداد فصل دوم شروطها درسته؟ شروط که تا شرط داشتیم وقت قبله مکان سفرال اره مکان تا اینجا هاش خوندیم تهارت البدن طرف کلام و اسلام اینا رو نرسیدیم متاسفانه اینا فصل سانی فصل سالس چیفیت و سلاف اینا هم ما کلن نرسیدیم من جای شما باشم اینا رو میخونم یه بار با یه ترجمه چیزی میخونم که دستم بیاد اینا برساش چی بود چیفیت سلات خیلی هم نبود سی بود سی سفه بود اینو حتما اگه تونستید چیفیت سلات رو مطالعه کنید این هم فصل چهار که باقی مستحبات ها هست یعنی ما مستحبات رو یه مقدار در گوشه کنارای این بحثهای قبلی گفتیم ولی یه سری مستحبات مونده اونا رو میگیم فصل خامس تروج هست در نماز چه چیزهایی باید ترش بشه؟ فصل سادس باقی نماز های واجب و یه سری نماز های مستحب دوباره فصل هفتم خلل بر نماز چه نماز چطور توش خلل وارد میشه مثلا شک کنیم نماز باطل شد خب خلله دیگه اون پرچه یه چیزی رو نگیم تشهاد یادم بره باطل میشه دیگه مثلا حالا مثلا ندارم رکوب این هم خلله فصله فصل هشتم قضا نماز قضا چه جریانش فصل نهم نماز خوف فصل دهم نماز مسافر فصل یازدهم نماز جماعت این یازده تا فصلی استش که ان در عرض جلسات آینده انشاءالله خواهیم خورد اگر تقسیم بندی که داریم صلوات از طرف پیغمبرتون نوزده اردی بهش سلات رو تمام کردیم نوزده اردی بهش حالا امسا چون یه ذره زودتر شد ترم دو آخر فروردی اگه بدرسیم تمام کنیم سلام تمام میشه برایش انشالله زکات و خوبست خیلی خوب این هم از این ما فصل های دیگر رو دیدیم حالا خود فصل چهارم چی هست شاید سانی توضیحی میده میگه که قدر زکره تزاییف ها و قبله ها جمعه تن من ها جمع تزافه به منیم وسط اسنا تزاییف کتاب یعنی در لابلای کتاب وسط های کتاب حالا اینجا منظور همینه در تزاییف سالات بحث سلات و قبلش یه سری از این مستحبات گفته شده عبارت رو یه جور دیگه میشه کند قدر زکره فی تذایفه ها و قبله ها این رو حتی باید تذایف باید فی قبلها ها مثلا اینجوری باشه زکره رو میتونید زکره بخونید اون وقت جملتن میشه محفولش دیگه قدر ذکر شهید اول در تذایفه ها و قبلها ها جملتن محفولش میشه این چه چطور ما منصوب باورده جملتن رو چون زکره آورده فایلش رو زده به شهید اول و بقیه جمعه تون پس آقا ما مستحبات نماز رو در لابلای بسقر خوندیم اما یه سریش مونده مستحبات دیگر رو ببینیم وحیه ترتیل و تکبیر بشماریم اینا رو یک ترتیل و تکبیر دو رفعال یدینه سه، توجه به ست تکبیرات چهار، یتوجه و بردت تحریمم پنج، تربل، مسلی قاعدن و ادامش دیگه حالا ادامه داره، خواهیم دیدیم رو شما تا رسیدیم شماره ها رو داشته باشید اولین مصنبی که داریم اینه وقتی تکبیر میگید تکبیر رو ترتیل داشته باشید ترتیل یعنی چی؟ به طبیعین حروفهی تکبیر رو قشن حروفش رو واضح بگو و اظهارها این اینو روشن بگو شافیم، شافیان یعنی سریع واضح شفاف قشن بگو لذا همون اول چه تکبیراتو لگه را میخواید بگید قشن الله اکبر حروف رو قشن واضح بگید حروف رو نخورید الله اکبر کافش اصلا نه اومد voice اصلا معلوم نشه چیه اینجوری نه به تبیین حروف و اظهارها حروف تکبیر و اظهار حروف ضمیرها رهاستون باشه شافیان هم چه عرض کردم یه آدرس هم بزنید اینجا ترتیل بنویسید به صفه 207 ترتیل قرائات رجو بشه آیا کریمه شما چه صفحت برامون یه چیزی نیست بنویس همین بحث ترتیل قرائت یعنی هم دو سوره رو که میخونیم تو کجا بحث شده؟ تو چیفیت سلاح بحث شده هم فصل قبلی که ما نرسیدیم اونجا بحث شده ترتیب اونجا ببینید ترتیب رو اونجا بیشتر توضیح داده مستحب دوم و رفع یدین بهی این مصطحبات رو تو باشه با نمازی که خودتونم میخونید هماهنگش کنید که این مصطلبات رو اعمال کنید چون معمولا تو مصطلبات خیلی اختلاف هم نیست. معمولا یه چیز نیست که این نظرش این باشه اون اون باشه. معمولا اینا خیلی گیر نمیدن. ولی باز البته از مرجع خودتون ببینید خب خیلی مطمئن‌تره. و رفع الیدین بهی در تکبیر به یعنی فتو یا مر رفع الیدان مستحب است. اینکه ما موقع نماز تکبیر میگیم رو میاریم بالا این مستحبه ها. بذارید جا نتونستی سی دستات رو بیاری بالا، همونجوری دست پایین تکبیر گفتید، اگر مستحبش عمل نکردی، مانعی نیست. هیچ چیز خللی نداره نیست. انجام بدی مستحبه. ببین شما میای مثلا میخوای نماز بخونی، میای همونجوری دستات پایین میگه الله اکبر، بسم الله الرحمن، هیچ مشکل نداره. ولی چون مستحب متشرعین این کار رو کردن همه همجوری یاد گرفتن فکر کنم واجب آره دیگه تا مثلا تو جماعت شما میرسیم امام تو رکوه تا دستاتو بیاری بالاوی نا تو نمی کشن همونی سری لحظه سریع الله و اکبر تو رکو آره. مثلا من خودم نماز جماعت یه وقت جایی دیر میرسم محور داشتیم حالا مو رو بخواد تکبیر بگی که با مو سخت تا مو رو بذاری زمین و اینها میبینی امام سرشو بلند. همون مو تو دستته؟ ببینون که دستتو بیاری بالا تکبیر بگو. مشکل نداره. مستحب. پس تک تکبیر با اون رفع الیدینش دو تاست است. یک چیز نیست. حالا اینجا یاد گرفتیم که رفع الیدین مستحب بیست در هنگام تکبیر. رفع الیدین بی. حالا تمول رفع الیدین عواستون باشه. ما مدل رخدیدن باید ببینیم به چه شکلی باید باشه الا حزا شهمتای اوزونه یعنی موازات برابر جلوه شهمتای اوزونه شهمه یعنی اون نرمه شهمتای یعنی دو تا نرمه نرمه کجا داریم گوش آره نرمه گوش لاله گوش میگن دیگه اوزانه هم دو تا گوش پس دستاتونو میاری تا اینجا دیدید بعضی یه بعدها جلو تر الله میارید جلو صورت میاره این نظر میگه نه تا همین نرمه گوش بیار دستاتو کمام مره این کمام مره لابد تو هم چیفیت سلات برس شده دیگه آدرس رو بنویسید بله تو بحث چیفیت سلات در خودش میگه فی تکبیر رکوب ساقه کنجره صفحه دویست و هیفده شه یعنی چی تکبیر رکوب یعنی از رکوب که سرتون رو برداشتید؟ تکبیر میگید اونجا هم دستتون رو همینجور میاد بالا حالا وَلَقَدْ كَانَ بَيَانُهُ فی تکبیر الاحرامه اولا منهو فیه میگه این توضیح که الان داشتیم اینو تو رکوع گفت دیگه درسته اگر این توضیح رو در خود بحث تکبیرات الاحرام تو اون چیفیت و سلات که ما نرسیدیم تو اون تکبیرات الاحرام توضیح میداد که دستا بیاد تا کنار این نرمیه گوش اون بهتر بود میتونیم بگین چرا یعنی که توروكو توضیح بده، رفع الیدین رو, رو، تو هم تشریحات احرام توضیح میداد دیگه. چرا؟ تکبیر این واجبو متکبر چون تشریحات الاحرام جلوتره. اینو بگو. تشریحات الاحرام اوله دیگه خودمو اول توضیح بده. این جور توضیح بده که طرف تو تکبیرات احرام انجام بده، بعد تو هم بگو همون شما تو تکبیرات الاحرام نمیگی، تو میگی. میگی تکبیرات الاحرام هم مثل همین. دیگه این شروع کرده نماز، حالا تو روکوه. اونو از دست داد دیگه لسا شهیده اعتراض میکنه میگه که ولقرد کنه لام نام جواب قسم هم میاره <تصفيق> اینجا یه قسم مقدر دارید دقیقا میگه که به خدا قسم که بیانش در تشکیلات احرام اولا از بیانش در رکو بود اولا منحفی زمین را رو گفتم داشته باشه چرا؟ چون تکبیرات الاحرام اول تکبیرات هست اولوها رو به تکبیرات دو دومین دلیل همین چیزی که آیه کریمی گفت البته طبق نظر بعضی بعضیا بعضی ها قائل به رفع قول هستن در حقام تکبیرات الاحرام وجودن خب شاید سانیم خوب دیگه دیگه پس شما باید این اونجا میگفتید چون اصلا یکی از واجبات تکبیلت و می میشد اگر قائل به وجوب میشدیم لذا با این دو دلیل اونجا میگفتید بهتر بود و القول به وجوب حیفیه زیادتن یا زیادتون قول رو چه اعرامی دادم؟ مرفو خوندم یا مجروع مرفو خوندم و القول به وجوب حیفیه زیادتون اگه جوجه می‌کنید مقتضا خبری یعنی دائل شدن به وجوب رفع الیتهای در تکبیرت ال احرام این تازه زیاده ای هم هست یعنی فقط این نیست که تکبیرت ال احرام اوله پس باید زودتر میگفتی نه تازه اینم اضافه بر اون اینم هست چه بعضی یا قائل به این هستن که واجب است بزنید می‌تونید اینجوری هم بخونید و القول به وجوب هی فی زیادتاً این دو له عطف میشه بر اون انه اولوها در این دوم جمله لانه اولوها ولی کان به وجوب هی فی زیادتاً یعنی اضافه برون قبلیه یه چیز دیگه هم داریم موران به وجوب رفع الی در تکلیفات احرام هست پس ها به دو دلیل جلوتر میگفتید بهتر بود که دو دلیل رو توضیح دادم خدمتون و جوبه رفعی در این دیگه فیه در تشمیلتال ایران گفتم این دار گفتم زیادت تن هم یا زیادت تن یعنی این اضافه بر اون مطلب قبلی جور دیگه معنی شده این عباره جور دیگه معنی شده وارد شروح بشید دیگه چیز میشید پس بعضی گفتن این قو به وجود به یفیح زیادتون یعنی اگر کسی قائل به وجود به در در تکبیر بشه این حرف زیادی زده این حرف زیادی خیلی زیاده روی کرده امثل اینجوری اینجوری هم من کردم زیادتون اگه بخونید قلو باید بخونید چه خبر اون باشه؟ زیادتر خوندید اونو قول لبه بخونید که عطف بر، اون قابلیت بشه این زیادتر، حال بشه یا؟ تمیز, تمیز؟ یا حال بیاره. اونو آرش ببرید دیگه چی میشم؟ من اولی چی چی که مثلا اولیش رو چی زیادت. این گفتم دو سه بار گفتم یعنی از اضافه بر اون دلیل اول قول به وجوبم تا زیادتم بر اون دلیل اول پس این زیادتون رو عواظتون باشه معنیشا گفتم پس سه تا احتمال تو این عبارت هست مستقبل القبله به بوتون الیدینه حالت مجموعه مجموعت الاسحابه مبسوتت این مستحب جدید نیست. همین توضیح رفع الیدین هست. چجوری رو بالا ببریم موقع تکبیر؟ میگم اینجوری ببین با باطن دست ها توی دست رو به قبله باشه. مستقبلا قبله به بتون. یعنی توی دستتون چف دستتون اینجا پشت دست نه کف دست این توی دستتون که مو نره. این رو به قبله باشه در نگا. پس شما ببینید اگر تو تکبیر دستتون رو اینجوری ببرید بالا چف دست رو به بالا باشه یا اینجوری ببرد رو به پایین باشه اینا اون مصطبی که ما میگیم نشاد دیگه ما میگیم جوری ببر بالا که دستات قشن رو به قبله باشه چف دستات به بوتون الیدینه حالتر رفت در هنگام چه دست بالاست رسیده به اون بالا رسیده به اون رفت نه در هنگامی که می بالا چون اگه می ببرید بالا اونجوری رو به قبله باشه که سخت میشه. ما اگه اینجوری ببرید بالا رو به قبله اون سخت میشه. <تبخش> <تبخش> <تبخش> نه دست به تو حرفش می خاید ببر بالا فقط اون بالا که رسید رو به قبله باشد. پس لذا گفت حالا تر رفت. اون آره شهید منظورش اون نمیتونه در جور در بیاد که ما چطور نمیتونیم اینجوری ببریم بالا. لذا باید اینجوری مهند کنیم. حالا تا رف رو رف رو بگیریم یعنی وقتی بالا هست. اینجوری. البته من اعتقادم اینه اینجوری حاشیه های چه سانی زده کار رو خراب تر یعنی اگر این تیکه رو نمی‌گفتم شما کاملا میدونستید منظور چیه. تا گفتیم شما هم به شک گفتید پس فلان اشکال می‌کنه. این همون داستانیه که گفتم. محکمات رو ترید به چی میکنیم؟ متشابه رو حال شام از سانانی نبود از این حالت طرف مجموع اتل اعصاببه انگشت به هم جمع باشه مجموع باشه. باز نباشه اینجوری مبسود تل ال ادهاامنگ البته دو تا انگشت شست اد اینا باز باشه. پس چهار تا انگشت به هم چسبیده. اون یه دونه باز ال اش حل این ال اش حل تاین مربوط همین مبسود تل ادهاامین ها. قید مبسوطت الابهام بنابر اشهر هر از ادامش میادیم و قیل قول غیر اشهرشیه چیه یزو ما و ما ما قول غیر اشهر این است که اون دو تا ابحام رو هم زمیمه کن به اون چهار تا پس طبق قول دو تشکیلات اونام این شکلی میشه همه انگشتا به هم چسبیده طبق قول اول شست ها باز میشه یه از اون مه همه رو کار پامن رو اله ها به اصابه ها به اصابه بزنیم حالا یه چیز دیگه هم باید توضیح بدیم اونم اینه که چه شکلی دستاتون رو میبری بالا ببین یه تکبیل باید بگیر الله و اکبر دستاتون هم همراه با اون باید ببرید بالا چه شکلی الان شما نماز رو که شروع می کنن مردم نگاه کنید مدل های مختلف همین رفاقی یاد این هست بعضی ها اینجور می کنن الله اکبر یعنی دستشو همراه با شروع الله اکبر می بره بالا تا تمام میشه شه الله اکبر ره چه گفت تموم شده می خواهد برگرده بعضی دستشو می بره بالا برگرد اینجور می دست که اومد پایین رسید تازه میگه الله اکبر بعضی الله و اکبر میگن بعد اینجوری می کنند بعضی ها میاره اینجا دستان رو بیاره جلو صورت یه تکون میده الله و اکبر. الله و اینجوری بعضی اصلا مودل ها مختلف هستیم ببینیم کدومش بیتره اینجا میگه که مبتده ان بهی یعنی در حالی که شروع کننده است به تکبیش الله و رو میگه این دبت دار رفت آن جالب شد پس دستو که میبرید بالا ابتدا بالا بردن ابتداء تشبیلتون باشه دست میاد میخواد بیاد بالا اللهو ببینید هم دست میاد بالا هم الله رو میگیم ما اللہو انتحاش چیجورید و بلوضع اندنته یعنی وقتی اللہ اکبر رو گفتید شروع پایین آوردن هم کنید همین مدل بگید من یه بار عملی اجام میکنم دستانو ببینید پایینه تا میخواد حرکت کنه به سمت بالا الله رو شروع میکنم اولاه اکبر ره که گفتم داره میاد پایین و بلوس یعنی مبتدا بلوس اند در انتهای تکبیر الا از اقوا. هل دیگه هم هست تو پا گفته بعد نیست اشاره کنم و همان غولان اخران از مناهج جبرده اول ان کمال کماله بعد قرار الیدین مرفوعتین شمالش بعد از این باشه که دست به بالا رسید اینجوری الله اکبر و یعنی دست به بالا رسید اون تمام میشه کامل میشه تجویر ول اخره ان یبتدء بهی عند الابتداء بالارسال این قول هم میگه شروع به تکبیر کن وقتی رو میخوایی بندازی دستو میاری بالا هنوزی چی نگفتی وقتی میخوایی دستتو بیاری پایین میگه الله حاکر این یه شکل بشه. البته تو مستحبات از اینجور اختلافات ما زیاد میبینیم مستحبات پر از اختلافه چون مستحبه دیگه بله میشه یه شکل خاصی قطعا همین باشه و ایلا و لابودی نه این نیست بله میشه همه این خوبه. خوب کار داره ها البته باید تو روایت وارد شید ولی بالاخره مستحبات اینجوری و توجه ها به ست تکبیرات مستحب چندم سوم میشه دیگه درسته شش تا تکبیر دیدید بعضی یا موقع شروع نماز اینجوری هفت تا تکبیر میگن این همینه شش تاش مستحبی اون یه دونه هم چه خود تکبیرات اونام میشه هفت تا و توجه ها به ست تکبیرات هن. با شش تا تکبیر توجه و رویاوردن به نماز توجه اول الصلاۃ ابتدای نماز شیش تا رو میگید قبل تکبیرت الهرام پس میگید الله اکبر الله اکبر الله اکبر شیش تا چه شد آخرش تکبیرت الاحرام الله اکبر نماز شروع مورد هفتمی هم تکبیرات الهرام خودمونه دیگه اونا مستحب اونها تکبیرات مستحب تکبیرات الهرام نیستن اونا میگه به ست تکبیرات تن نه میگه تکبیرت قبل تکبیلت الهرام و حوال افزل این مدل افزله مودل های دیگه هم داریم البته خواهد گفت او بعدها یا یعنی اینکه تکبیلت الهرام رو بگو بعد تا بگو چنده بود این الله و اکبر وارد نماز شدم پیجن که بسم الله رو بگم شروع کنم تا تکبیل دیگه رو اونجا میگم مستحب رو بعد با بسم الله رو میگم او به تفریق سه تا قبل از تشمیلت داره رام سه تا بعدش میگم دو تا قبل میگم چهار تا بعد میگم چهار تا قبل میگم دو تا بعد اون مهم نیست حتما وسط لازم نیست به تفریق فی کل سلات فرزن او نفلن الال اقوا سلات فرز تنمیم گذاشته زیر سلات درسه فرض رو صفت گرفته هر نمازی که واجب است ولی سلات فرزن هم بخونیم مضافیم له به نظرم مشکل نداره صلاۃ فرزن او نفلن علل اقوا هر نماز واجب یا مستحب بنابر اقوا درسته میشه این کار رو کرد سررا آهسته میگه بلند نگو آهسته میگه مطلقا یعنی تو هر نمازی میخواد باشه آهسته بگو یا تو هر تکبیری آهسته, آهسته بگو اون شش تا رو آهسته بگو اون شش تا رو بلند بگی این نهفع امام جماعت مثلا اون اول رو بلند بگی فکر کنن رج اونم اختدا میکنن بعد تازه فرما هم شروع نشده بوده حالا اینو بگم محمدی این تموم بشه یچب برو سلاسن منها و یدعو سه تا تکبیر رو میگه تو اون تا دعا میکنه پس این تکبیرات بینشون دعا هم خوبه یدعو به کدام دعاء بقول الله انت الملك حق لا اله الا انت الاخره آدرس داده کجاست وثنتا بعد دو تا تکبیر دیگه هم میگه و دعا رو میخونه. کدوم دعا؟ اینجا لبیک و سعدای کرد دوباره آدرس داده مراجعه کنید. و واحدتا بعدشون یه دونه دعا که مونده اونم میخونه، دعاشم میگه یا محسنو قد عطاکل مصی. این همون بعد از تکبیر ششم دعا رو چه خوند بعد تکبیرات الاحرام. و رویه انه یجعلهاذ دعا قبل تکبیرات روایت شده که این دعای یا محسن رو قبل از تکبیرات بخونه پس بعد از ششومی دیگه دعا نمیخونه ششومی رو چه گفت تکبیرات ایران بعدش میگه فلایت او بعد از ساده سر و مصندف در ذکرا همین قول داره اتفاقاً علیه هل مصندف و فز ذکره. پس تو ذکرا گفته که آقا سه تا میخونه اون اللهم و انتر ملک تا میخونه لبک و صدک یه دونه میگه دیگه دعا نداره چرا؟ چون این رو قبل از همشون گفته بود من نقله ماهانا البته اینجا اینجوری گفته و, و بله در ذکرا نقل کرده اون چیزی رو که اینجا هست آره اینجوری در ذکرا اینی که الان این تو گفت رو نقل کرده ولی اصل نظرش همونی چه گفتیم قبل دیگه دعا رو و دروسه و نفریته تو دروس و نخیه هم نظرش همون نظر ذکراست اونا رو ادخ کنید برام این خطی که گذاشتن این چاپ اونجوری کار خوبی کرده و فل بیان چی میگه و فل بیان کما ہونا مثل لمه نظر داده ول کلو حسن چون مستحب بن دیگه و رویه جره ها من غیر دعاین این بینها تازه روایت شده که اون شش تا تکبیر رو پشت داره هم بگید اصلا دعا نخونید توشون ولانین پشتره هم بدون دعا بین اون دوها بین اون تکبیرها ول اختصار رو علا خمسه اینم روایت شده گفت پنج تا تکبیر بگو غیر از اون تکبیره تا سه تا بگو همه اینها روایت شده تو مصدبات ما اینها رو داریم بسیار خوب خلاباتوی افرس اللهم مطبا محسا رو